up up up up وانی فارسی بنابی یزدانی و پرورنده عزیزان ویرای سلاو من خوشحالین لوی که لبرنامه وانی فارسی پیک دگینو باوکی رامین دو روش لمو کردو و کردوو، امرو حالی باشتره. رامین لپنا باوکی لنخوشخانه یا. محمد بم رامین رادگینه که دیهوه سردانی باوکی بکت. کدجمر چوار تا شش دوانی ورو کاتی سردانی نخوشان لنخوشخانه یا. محمد نزیکی کدجمر پینج دگات نخوشخانه. لپرستارکا جمعری جوری باوکی رامین دپرسیو، د چته نه هومي چوارم او لر رامین دبیني بولايدلچي دوه بیسټني امپيشكي فرموندګال او شو د استوازه كامل ان پدر، پدر، باک، حالش چطور است، حالش چطور است، حالی چونه، الحمدلله، الحمدلله، شکر خواه دیدن، دیدن، دیتن، دیتن، تو آمدی، تو آمدی، تو حتی، خواهش میکنم. خواهش می کنم. تکدکم. اتاق. اتاق. جور. کدام است. کدام است. کمه با من. با من. لگال من. بیا. بیا. وره. خوبم. خوبم. باشم چطورید. چطورید. شونن دوست دوست هوره دوست سامی دوست سامی می هوره نزیک خوشحالم خوشحالم خوشحالم به خاطر به خاطر لبر گل گل گل گلها، گلها، گلکن، زحمت کشیدیت، زحمت کشیدیت، زحمت تنکش، الان، الان، است، بهترید، بهترید، باشتری، امروز بهترم، امروز بهترم، امرو باشترم. فکر می کنم فکر می کنم پیونیا عملی جراحی عمل جراحی نژداری برای برای بو سخت سخت استم چون چون چون پیر پیر پیر نیستید نیستید نی جوان جوان گنج جراح جراح نجدر جراحان جراحان نجدارکن. خیلی خوب خیلی خوب زور باش. دکتر رزوی دکتر رزوی بسیار خوب بسیار خوب، زربش، از او متشکرم، از او متشکرم، لی ممنونم يستا به ورجي جويب بو تويجين وان رامنو هاوركي سلام رامین. حال پدرت چطور است؟ سلام رامین. حال پدرت چطور است؟ خوب است، الحمدلله. متشکرم که آمدی. خوب است، الحمدلله. متشکرم که آمدی. خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ با من بیا. با من استاش همان و تویش به ورگرانی کوردیو سلام رامین حال پدر چطور است سلام رامین حال او چونه خوب است، الحمدالله، متشکرم که آمدی باشه، شکری خدا، سپاس دکم که هتی خواهش میکنم، اتاق پدرت کدام است؟ تکه دکم، جورکه باو کت کمه با من بیا لگامنواره او د وانا دینه نیو جوړک باوکی رامین لسر قربله یګ راک شاوو پراستاریک پشکنینی پزیشکی بودا کډ پراستارک ل در محمد که چبک ګول کیلې د سدايه بر ولای باوکی رامین د چتو چاکو چونی سلام حالتان چطور است من محمد هستم سلام حالتان چطور است من محمد هستم سلام الحمدلله خوبم چطورید سلام الحمدلله خوبم چطورید پدر محمد دوست صمیمی من است پدر محمد دوست صمیمی من است. خوشحالم، زحمت کشیدید، به خاطر گلها خیلی ممنون. خوشحالم، زحمت کشیدید، به خاطر گلها خیلی ممنون. خواهش میکنم. الان حالتان چطور است؟ بهترید. خواهش میکنم. الان حالتان چطور است؟ بهترید. بله. امروز بهترم. اما فکر می کنم عمل جراحی برای من مشکلتر از دیگران است. چون من پیرم. بله، امروز بهترم. اما فکر می کنم عمل جراحی برای من مشکلتر از دیگران است. چون من پیرم. نه پیر نیستید. جوانی دو ایران جراحان خیلی خوبی دارد. نه پیر نیستید جوانید و ایران جراحان خیلی خوب دارد بله دکتر رزوی جراح بسیار خوبیست از او متشکرم بله دکتر رزوی جراح بسیار خوبیست از او متشکرم سلام، حالتن چطور است؟ من محمدم سلام، حالت چونه، من محمدم سلام، الحمدلله خوبم، چطورید؟ سلام، الحمدلله باشم، بخود چونی پدر، محمد دوست صمیمی من است بابا، محمد حوره نزی منم. خوشحالم، زحمت کشیدید، به خاطر گلها خیلی ممنون خوش حالم، زحمتت کشه، لبرگلاکنزور ممنونم خواهش میکنم، الان حالتن چطور است؟ بهترید؟ تکدکم، اصلاح حالت چونه بشتری؟ بله، امروز بهترم، اما فکر میکنم عمل جراحی برای من مشکل تر از دیگران است، چون من پیرم بله، امرو بشتریم، پیمویه داری بو من لکسانی دیگه زحمت تره، چون کون من پیرم نه پیر نیستید جوانید و ایران جراحان خیلی خوبی دارد نه پیرنین گنج نو ایران نجداری زور باشی هیه بله دکتر رزوی جراح بسیار خوبیست از او متشکرم بله دکتر رزوی نجدارکی زور باشه سپاسی لدکم دوی ما وای یک پرستاره که د ته جوړه کو د لید کاتی سردانی نه خوشاکان توو بو دوی اوا محمد الا جال رامینو باو کی خو حافظی د کاتو اواتی ساغو سلامتی بود خوازه رامین للی باو کی د مینې توه ایمش اوان ایو خوشبستانج د کین ته برنامه کی دیکو وانه فارسی Thank you.